مایه‌ای که ما میتونیم از اون بحث تجسم اعمال را برداشت کنیم آیات 34 و 35 سوره مبارکه توبه هست که این آیات بعد از اون که در باب اعمال یهود و نصارا و اون در واقع اعمال شرکالود و آنها سخن گفت مخاطب را مسلمانان قرار داده و می فرماید یا ای یهلذین آمنو ان کثیرا من احبار و رهبان لیاکلون اموال الناس الباطل ای کسانی که ایمان آورده اید بسیاری از دانشمندان اهل کتاب و راهبان اموال مردم را به باطل می خورند و یسدونه عن سبیل الله و الذین یکنزون الذهب و الفضه ولا ينفقون ها في سبيل الله فبشرهم بعلى علاب عليم و اونها را از راه خدا باز می‌دارند و کسانی که طلا و نقله را گنجینه و ذخیره و پنهان می‌سازند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند به مجازات درد ناکی بشارت ده پیامبر خداوند این را می‌فرماید و در آیه 35 می فرماید که یوما یوما علیها من نار جهنمه فتوکوا به ها جباه و جنوب هم و دهورهم هم ما کنستم لنفسکم فزوقو ما کنتم تكنزون در آن روز که آن را در آتش جهنم گرم و سوزان کرده و با آن صورت و پهلوها و پشت را داغ میکنن و با آنها میگویند این همان است که برای خود اندوختید و گنجینه ساختید پس بچشید چیزی را که برای خود میاندوختید خب اینجا هم دقیقاً تجسم اعمال را شما مشاهده میکنید یعنی نکته که اینجا آمده است که کاملا به این رفتار اشاره دارد تجسم اعمال هست دیگه که بحث دنیا پرستی رو داره میگه بحث ثروت اندوزی رو مطرح میکنه و لذین یک نزون ده به و الفضت ولا یونفقونها فی سبید الله فبشرخون به عذاب علیم ببیند یک نزون از ماده کنز به معنی جمع جور کردن اجزاء چیزی میگن بعد اینجا جمعوری و نگهداری و پنهان کردن اموال یا اشیای گران قیمت اطلاق میشه که بحث اینجا شما باید و نقره آمده است ببینید این کاملا بر ما مشخص میکنه که خدمت شما عرض شد که طبق سخنی که ایشون داره اینه که طلا و نقره در دو نشعه یعنی دنیا و آخرت به دو صورت مجسب میشه در دنیا در واقع به صورت فلز فلز خیرکننده چشم ها و در آخرت به صورت عذاب دردناک الهی خواهد بود یعنی ببینید افرادی که قرار بود در واقع بیان این چرخه اقتصادی رو در واقع مبادلات اقتصادی رو فراهم کنن اومدن چه کار کردن؟ هلان متاسفانه تو فضای کشور ما هست دیگه یه دمیان سکه میخرند، این موجب گرون شدن میشود ببینید این دقیقا مغایر با اون هست دیگه یعنی اینها رونق اقتصادی رو چهار میکنن میکنند؟ فلج میکنند که ما از این آیه کاملا برداشت میکنیم این میخواد آیه اشاره میکنه که اینا این جنبه هست حالا چرا این سرعتان نوزان را خدا میخواد کیفر باین نوع کیفر سرعتان نوزان را شما باین یا ما علیها فینار جهنم مفتوق فا به و جنوبهم و ظهورهم چرا حالا خدا میاد با این روز فرا فرامی رسه که این سکه ها رو تو آتش سوزان دوزخ در واقع داغ و گداخته میکنه و بر پیشانی و پهلو و پشت اونها قرار میده. خب ببینید این نکتهش اینه که این پیشانی ای این موارد این حرارت رو کجا قرار میده؟ طرف انگار به جایی که این سه, سه عضو رو بیان کرده یعنی شما مبینید اون شخص در حقیقت سجدگاهش قرار بود خدا باشد شد مالش قرار بود در حقیقت خدمت شما عرض شده که بحث پهلو مطرح میشه دیدید آدم لم میده به پهلو بس پهلو یعنی اینا احساس میکردن ما اون ماله براشون تکگاه هست به پشت اینا یک خدمت شما عرض شود که پشتوانه خودشون لحاظ میکردن اینگونه میشود که اینها را خداوند عذاب میکند این آیاتیه که در واقع نهی به معناداری هست برای افرادی که میانین سیم و زر در واقع اندوخته میکنن و جلوی در واقع رونق را میگیرند خب آیه بعدی آیه هشتادم سوره مبارکه آل امران هست که میفرماید که بلا تحسبند الذین یبخنون به ما آتاهم الله من فضلهی و خیرن لهم بل هو شرن لهم سیوتبقون ما بخلو بهی یوم القیامه البته این آیه 182 آ... هست آیه 182 سوره آل امران که این اصلاح کنید در واقع کتاب آمده از 80 ببینید اینجا بحث سرنوشت افراد بخیل رو خدا داره تو روز قیامت در واقع مطرح میکنه که این کاملا ما تجسم اعمال رو متوجه میشبیم درست تو آیه از زکات و حقوق واجب مالی یا اینها نیمده اما تو روایات تفسیری شما بروید سراغ این متوجه میشید که آیه به افرادی اشاره دارد که زکات را در واقع نمی پرداختن مانع بودن تو این مسیر این نکته را شما بهش دقت کنید خب سیوت وقون ما بخلو بهی یوم القیامه خدا میگه افرادی که بخل می نه و از اونچه خدا از فضل خود به اونها داده در راه اون نمیدن تصور نکنن که به سود اونها هاست بلکه این در واقع به این کار به زیان اونها تموم میشه یه طوق گردنشون میشه اه. یعنی آقا اموالی که حقوق واجب اون پرداخته نشده و اجتماع از اون بهرمند بحر نشده است و در مسیر حوثهای فردی و مصارف شخصی در واقع به کار گرفته شده فقط رو همدیگه جمعوری شده است هیچ کم استفاده نکرده رونقی هم ایجاد نشده مثل سایر اعمال زشت آدمی تو روز قیامت بر قانون تجسم اعمال تجسم پیدا می‌کنه این تجسمه به چه شکل اینه که اموال به شکل طوقی بر گردن میافته که در واقع حالا انسان باید اینو بیاد این تمام این سنگینی مسئولیتش رو به به دوش بکشد تحمل کند اون رو یعنی شما ببینید این دقیقا به این نکته اشاره دارد سنگینی در واقع این توغه رو خداوند میخواد بازگو کند و به تعبیر آیت الله این آیه مانند آیه قبل میرسونه که انوالی که انسان برخلاف حکم الهی روی همان باشته در قیامت به صورت آزار آزاردنه تجسم خواهد یا فمایه عذاب بخل ورزان میشود این دیگه که شما مشاهده میکنید در سوره لغمان آیه 16 از قول سي لقمان حکیم به فرزندش هست که میفرمان یا بُنیا انها ها ان تکم مسقال حبه من خردل فتکون فی صخره او فی السماوات او فی الأرض یأت بها الله ان الله لطیف خبیر پسرم اگر بنازه سنگینی دانه خردلی کار نیکی و بد باشه و در دل، دل سنگی یا در گوشه از آسمان ها و زمین قرار گیره خداوند اون را در قیامت برای حساب می‌آورد. دلیل چیه؟ چون خداوند دقیق و آگاه است. خب ببینید شما وقتی نگاه می کنید بحث اعمال مطرح شده است اینجا. ببینید خردل گیاهیه که دا دا دانه های سیاه بسیار کوچکی داره که توی کوچکی و هقارت ضرور مثلا یعنی اگر اعمال, اعمال نیک و بد ما هر قدرم کوچک و کم ارزش باشه و هر قدرم مخفی و باشه مثل خردلی که در درون سنگی تو اعمق زمین یا تو گوشه از آسمان مخفی باشه خداوند لطیف و خبیر که از تمامی موجودات کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر در سراسر عالم هستی در واقع آگاه هست اون رو برای حساب و پاداش و کیفر حاضر میکنه و چیزی در منظومه در واقع معرفتی در واقع معرفتی حق گم نمیشه مرجع زمیر ها شما در انها می‌فرماید یا بنی انها این مرجع زمیر رو هم شما به اشتقت کنید به حسنات و سیعات و اعمال نیک و بد برمی گرده توجه به این نکته که کنیم میخواد بگه آقای اینا نزد خداوند حاضر هست حاضر و ناظر هست خب اینم یه نمونه آیه که دیگه کاملا سراحت داره و به تعبیر آیت الله سبحانی ظاهر آیه نشون میده که روز قیامت خدا خود عمل انسان رو میاره و اون رو ملاک پاداش یا کیفر قرار میدهد که در روایت تفسیر ما هم به این نکته اشاره شده است که از امان باغر علیه السلام نقل شده در اصول کافی هم داریم که از گناهان کوچک بپریزید چرا که سرانجام کسی که از اون بازخواست میکنه گایی بعضی از شما میگن که ما گناه میکنیم و به دنبال آن استغفار میکنیم در حالی که خداوند در واقع میفرماید که و نكتهم و مقدمهم و, و آثارهم و كل شيء احصيناه في امام مبين یعنی رب حمید چیز ما تمام اون چرا از پیش فرستادن و هم همچنین آثارشون رو همه چیز رو در لوح محفوظ احساب و شمارش کردیم و امام باز ارجاع به این آیه میدن به دو آیه ارجاع میدهند که ما این رو در تفسیر نور و سغلین هم ذیل این آیه مشاهده میکنیم های دیگه که ما مشاهده میکنیم که دیگه همه شما آگاه هستید سوره در واقع زلزله اگر خاصیت برید ببینید دیگه آیات معلوم هست که همه شما هستید آیات هفتم و هشتم که میفرماید فمن يعمل عمل ذره خيرا يره و من يعمل عمل ذره شرا يره هر که هم وزن کار خیر انجام بده اون رو میبینه هر کس هم, هم وزن ذره کار بد کرده باشه اون رو میبینه من بحث جزای اعمال مطرح شده است دیگه یرحو. که زمیر به کجا برمیگردد ایشون میگه که زمیر درون به خود عمل که در کلمه عملو در واقع استفاده میشه برمیگرده یا به کلمه خیرن و شررا که در هر دو صورت ظاهر اینه که انسان در سرای دیگر خود عمل را میبیند اینجا بحث یعنی ببینید یه ادنه میگن خود عمل را میبیند یا پاداش و کیفر را میبیند ببینید فمن یه عمل مثال زرتن خیرن هو این آن چیزی که شما ظاهر آیه دارد مشخص دیگه به عمل برمیگرده و پاداش مطرح نمیشود اینه که ما خود عمل را اعم از نیک و بد در روز قیامت مشاهده میکنیم حالا اینجا سر سوزنی کار نیکی و بد باشه برای اشخاص در واقع مجسم میشود و اون رو مشاهده میکنن ببین اینجا مسقال آمده هست مسقال هم در لغت به معنای های سقل و سنگینی هست هم ترازویی که با اون در واقع سنگینی اشیار رو میسنجن که اینجا در واقع همون سقل و سنگینی هست بس ذره اومده دیگه که حالا از به معنی مرچه کوچک یا گرد و قبار هست که گاهی اوقات شما این را توی آفتاب می بینید دیگه این دیگه کاملا گویاه هست آیه یا در آیه دیگه که ما داریم آیه خدمت شما حرش شود که ایشون ارجا داده آیه 28 سوره مبارکه بقره در حالی که این آیه آیه 24 سوره مبارکه بقره هست این را هم اصلاح کنید میفرمایید که فین می لم تفلو ولا تفلو ف تق نارلتی و غود و هناص و هجارتو و این بحث دی ۲7م داره بحث تهدی رو مطرح می کند. بحث منافقان و کافران رو میگه که اگر میتونن قرران رو بیارن در حالی که نمیتونن بیاورند فین لم تفلو و تفلو پس اگر چنین نکنید و که هرگز هم نخواهید کرد. خطق النار التي وقودها الناس والحجاره وعدت للكافرين از اتشی بترسید که هیزم آن ببینید بدنهای مردم گناهکار و سنگ سنگ بتها است و برای کافران آماده شده است خب این آیه را ما اینجا میتونیم دقت کنیم روی این آیه بحث تجسم اعمال به تعبیرشون خدا داره هشدار میده این نکته یعنی شما وقتی نگاه میکنید وقود در حقیقت خدمت شما شود که به معنای آتشگیره هست که ماده قابل اشتعال مثل هیزوم و اینها را هم در واقع میگن حالا بعضی هم میگن آقا هجاره هم اینجا بوتهایی است که اونها رو از سنگ ساخته بودن که ما داریم توی آیه 98 صورت انبیا داریم دیگه نکن و ما تعبودونم این دونه لاه حسب و جهنم حالا بعضی میگن هجاره همون سنگ گوگیرده که ترالتشون بیشتر از سنگهای دیگه است. حالا ما کاری به این اقسام نداریم اینه که میخواد آن چیزی که هست از ظاهر این آیه برمیاد که آتش دوزخ از درون خود انسان ها و سنگ ها و شعل ور میشه حالا بحث علمی اونم به کنار ها که بحث اینه که انرژی و این موارد رو مطرح می کند که ما در آیات ششم و هفتم سوره همزه می خانیم نارالله الموقده التی تتل ولل افعده در واقع آتش سوزان پروردگار که از درون دلها سرچشمه میگیره و بر قلب‌ها سایه می‌افکنه اف... می از درون به بیرون در واقع سرایت میکنه در حالی که آتش دنیا از بیرون به درون سرایت می‌کند. خب این کاملا گویای تجسم اعمال هست که ما این رو میتونیم برداشت کنیم خب این یک نمونه که اینجا بیان شد نمونه دیگه که بازیشون تو همین فضا آورده خدمت شما عرض شود آیه دهم ده سوره مبارکه آل عمران که میفرماید ان الذين كفروا لن هم عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئك هم وقود النار ثروت ها و, و, و فرزندان کسانی که کافر شدند نمیتونه اونها را از عذاب خداوند باز دارد و از کیفر راهایی ببخشه و اونها در واقع خود آتشگیره دوزخند خب اینم مطلبی که آمده است که اینجا بحث وضع دردناک کافران تو روز قیامت در واقع روشن شده است این کاملا گویای این مطلب هست بحث و اولاکه هم و قود اینه که اونها هیزم و آتش جهنم هستن کاملا به تجسم اعمال در واقع گویا هست یا شما باز مشاهده میکنید همون آیه که من بهتون گفتم سوره انبیا هم تو همین فضا بحث شده است. در آیه 98 سوره انبیا شما میخوانید که این نکم و ما تعبودون من دون الله و جهنم انتوم لها واردون شما و آنچه غیر خدا می هیزوم جهنم خواهد بود و همه در آن وارد می شوید خب بس سرنوشت مشرکان مشرکان ظالم رو خدا داره میگه. حسب در واقع به معنای پرتاب کردنه به قطعات هیزمی که تو تنور پرتاب می کنن می که اینجا در واقع یه دمیگن هیزم هست که الان توی مواردی که بیان شده حالا ما جدا از اینها آن چیزی که وجود داره اینه که آیه داره به مشرکان میگه که آتشگیره جهنم و هیزمی که شؤله های اون رو تشکیل میده خود شماها ها و خداهای ساختگیتون هستن و میگه که قطعات هیزم بی ارزش در واقع چیه یکی بعد از دیگری در جهنم پرتاب میشید پس این قطعات شما پرتاب میشید انتومله ها واردون واردون خواهید شد ببینید نه. حالا اینکه چرا حالا بوتها آر... بوت رو باید در آتش انداخت حالا جدا از اون عذاب و مجازاتی که برای بوتفرستان هست اه. تحقیر هم اینجا مطرح هست تحقیر رو شما مشاهده کنید به تعبیر آیت الله سبحانی ما این ستا رو می بینیم که آقا دوزخیان خودشون آمل مشتهیل شدن آتش دوزخ دوزخ هستن یعنی کفر و شرک و ملکات رزیده هست که اینها در اثر گناهان تو نفس اونها رسوخ کرده و تو شرایط خاص رستاخیز به صورت آتشگیره در می آید. که ما این ستا آیه را در اداد هم نیگر می گیریم آیه دیگه که ما باز تو همین فضا مشاهده می کنیم آیه نودوم سوره مبارکه نحل هست که می فرماید و من جا به سیعته فکبت وجود هم فه نار حل تجزون الا ما کنتم تعملون البته اینجا هم آیه 90م سوریه نمل هست ای کاش که کسی میمد اینا رو ویرایش میکرد که این اشتباه های این شکلی رخ نمیداد عدد سوره ها عنوان سوره ها اینا اسلام شد خب حالا بگذاریم میفرماید اونهایی که اعمال بدی انجام دهند به صورت به شکل در واقع تو آتش افکن نمیشن آیا جزایی جز آنچه چه عمل میکردید خواهید داشت ببینید اینجا آیه نکته‌ای که بیان میکند شما برید آیات پیشین رو نگاه کنید از آیات پیشین ما فضا برامون روشن میشود که آیات پایانی سوری نحل هست افرادی که در واقع کارهای خطا انجام دادن به دوزخیان رو خداوند اشاره میکنه کنه در واقع اینه که کسانی که سیعه و کار بدی انجام دهند، به رو ببینید اینجا داره میگه به رو در آتش افکنده می شوند فکبت وجوه هم نار این مورد شما بهش دقت کنید و جز این توقعی نمیتونن داشته باشن دلیلش چیه اینه که هل تو زون الا کنتم تعملون های جزای جزون چه عمل میکردید خواهید داشت ببینید کبت از ماده کب به معنای افکندن چیزی به صورت بر زمین هست وجوه هم اینجا اومده دیگه که شما مشاهده می‌کنید، کنید بسیل که بسیل صورت مطرح می شود اینجا دیگه این نوع دیگه بدتره نوع عذاب هست دیگه که شما برای این افراد مشاهده می هل حل تدزه ما کنتم تعملون خدمت شما عرض شود که این نکته که میگه اینه که این اعمال شما که دوامنتون را گرفته در واقع جزای اعمالتونه و به تعبیر آیت الله سبحانی و در واقع اینها را ما میتونیم بگیریم از ظاهر این آیه میتونیم بگیم اون کارهایی که تو دنیا انجام دادن یده جزای عاملان اونها خواهد بود که این مورد را شما دقیقا مشخص میشود براتون که دیگه این اوج تحقیر برای این اشخاص است یا شما در سوره مبارکه یاسین باز میبینید در آیه و ام آمده است که فلی یوم لا نفسون شی شيئا ولا تظلمون ای لاما ما کنتم به اونها گفته میشه که امروز به هیچ کس ذره ستم نمیشود و جز آنچه را عمل میکردید جزا داده نمیشه نمیشوید اینجا داره بحث بهشتیان رو میگه اهل بهشت که در واقع در مواهب مادی و معنوی در واقع غرق هستند اه... که خدمت شما عرض شود که بحث ولا توزیزه اونه ما کنتم ت... تعملون اومده دلیل عدم ظلم و دل... عدم وجود ظلم رو مطرح میکنن اینه که جزای همه شما همون اعمال خودتونه این چه عدالتی بالاتر از این میخواد بیان کنه که اعمالی که از نیک و بد تو این دنیا ما انجام میدیم در آخرت همراه ما خواهد بود و تجسم در واقع این اعمال تجسم پیدا میکنه و در تمام مواقف محشر و پس از پایان حساب همدم و همنشین ما هست این عین عدالت هست یا شما نمونه دیگه که باز مشاهده میکنید سوره مبارکه قاف هست که در آیه 21 این سوره آمده است که البته بیست و دومه باز این را اصلاح کنید در آیه بیست و دومه قاف آمده است که لغت کنتفی غفلتن من هازا فکشف نانکه قطاع کفه بسرکل یوم حدید در واقع بحث مجرمان را میگه اینجا به مجرم خطاب میشه به مجرمان که تو از این صحنه یعنی صحنه و دادگاه بزرگ قافل بودی و ما پرده را از چشم کنار زدیم و امروز چشمت کاملا تیز بینه که بحث قفلت و کشف قطع میرسونه که چیز در دنیا پیوسته با انسان همراه بوده و او از اون قافل بوده حالا در روز قیامت این پرده های انانیت و غرور کنار میره و همه چیز بر ما روشن می شود چون اونجا یوم تبل سرائر هست ما از اون خواب قفلت بیدار میشم این قر... در واقع قیامت یوم البروز و یوم شهود و یوم تبلس سرائر هست دیگه همه سریرها در واقع آشکار میشه خب اینم آیاتی که ایشون در باب در واقع تعیید تجسم اعمال استفاده کرد